به نام خدای یگانی مهربان سلام امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی کن. درمی هزار افسان میزنیم به دنیای پر رمز و راز مردمان ترکمن و از گنجینی ارزشمند ادبیات شفاهی این قوم افسانهای رو براتون نقل می کنم به نام مرد خانیدار برگرفته از کتاب های مردم دنیا گردآوری عبدالرحمن دیجی محمد قسا و الله دیدبان در روزگاران گذشته مردی بود به نام فریت که زنی به نام لیسی داشت اونا دختر کوچیکی به نام کیندی هم داشتن فریت مرد پرتلاش و پرکاری بود اون از صبح زود کار کردن رو شروع میکرد مزرعه رو شخ میزد بعض میپاشید و محصول رو خودش به تنهایی درو میکد فریت علاوه بر این کارها عدف ها و یونجه ها و گندم ها رو می برید. دست بندی می کرد و زیر نور خورشید خرشید می تا خشک بشه. بعد اونا رو به خونه می برد. فرید سفرید شبان روز در حال کار و تلاش بود. زنش لیسی هم خونه رو تمیز می کرد. غذا می پخت. از شیر کره گرفت و از حیات خونه و بچه ها موازبت می کرد. بعد. لیسی هم سخت مشغول کارهای خونه بود راستش رو بخواین هر دوی اونا خیلی کار میکردند اما فرید همیشه فکر میکرد اون بیشتر از زنش کار میکنه و زحمت میکشه بنابراین یکی از شبها که از مزرعه برگشت وقتی آبی به سر و صورتش زد تا خستگیش در بره رو کرد به زنش و گفت «اوه خوش. چقدر امروز هوا گرم بود خیلی کار کردم لیسی تو اصلا نمیدونی که کار مرد ها چقدر سخت و زیاده نه تو اصلا نمی دونی. ولی خب در عوض کار تو اصلا زیاد نیست خوشا به حالت لیسی خوشا به حالت لیسی که از این حرف شوهرش کمی ناراحت شده بود گفت ولی فرید شوهر عزیزم کار منم کار ساده و راحتی نیست تصور درستی در مورد کار من نداری خونه داری بچه داری درست کردن غذا به نظر تو اینا کار آسونیه فرید پوزخندی زد و گفت <تصفح> تو به اینا میگی کار تو خونه چرخیدن و یکمی خونه رو تمیز کردن که کار نیستن. لیسی هرچی در این باره با شوهرش بحث کرد فایدهی نداشت که نداشت یه روز وقتی فرید خسته و از کار برگشت خونه و مثل همیشه خستگی و کارش رو به رخ زنش کشید لیسی که از این برخورد همیشگی شوهرش سخت عصبانی شده بود با عصبانیت گفت حالا که اینطوره از فردا ما جامون رو با هم عوض میکنیم من کار تو رو انجام میدم تو هم کار منو فرید خنده ای کرد و با تمسخر گفت <تصفيق> تو، <تصفيق> تو، تو به جای من میخوای بری مزرعه و محصول رو درو کنی؟ لیسی با قاطعیت جواب داد بله من من از همین فردا به مزرعه میرم و محصول رو درو میکنم و علفها و یونجها رو به خونه میارم اصلا هر کاری که تو بیرون از خونه انجام میدی من انجام میدم بعد به چشمای شوهرش زلو زده گفت خب چی میگی؟ قبول میکنی؟ فرید فکر کرد که بد نیست روی چمنو دراز بکشه و از دخترشون کیندی مراقبت کنه و زیر سایه از شیر کره بگیره. یه کمی هم سوپ و خوراک قارچ بپسه بعد با خودش گفت آه چه کرای ساده و راحتی. لیسی که سکوت شوهرش رو دید دوباره پرسید بالاخره چی میگی قبول میکنی یا نه. فرید با خوشحالی جواب داد بله, بله بله بله بله قبول میکنم فقط فقط یادت باشه که خود تو این پیشنهاد رو دادی نه من بردای اون روز لیسی صبح زود از خواب بیدار شد، یک کوزه آب برداشت و داس بزرگ رو هم روی دوشش گذاشت و به طرف مزرعه براه افتاد، فرید هم یه راست رفت توی آشپزخونه و برای صبحونه نیم رو درست کرد، هنوز مایی تابه روی اجاق بود که به فکرش رسید یک کمیم آب پرتغال تهیه کنه، بنابراین سراغ پرتقالهایی که توی زیر زمین بود رفت و چند دقیقه بعد که از زیر زمین بیرون اومد بوی نیمروگ سوخته شده همه فضای خونه رو پر کرده بود فرید هرچند از این وضعیت پیش اومده ناراحت شده بود ولی با خودش گفت اتفاقی که افتاد دیگه افتاده کاریش نمیشه کرد در این موقع به یاد تنها گاوشون افتاده و با خودش گفت حیوان بیچاره از دیه روز حالا یه قطر آبم نخورده بهتر سریبش بزنم بعد با قدم توند تند یه آب خونک برای گاو برد وقتی که به طویل رسید دید حیوان بیچاره از تشنگی زبونش از دهنش بیرون اومده معلوم بود که گاو بیچاره گرستنم هست بنابراین فرید تصمیم گرفت گاو رو به چمنزار ببره تا چیزی بخوره ولی باید فکریم به حال دخترش کیندی می میکرد اگه گاو رو به چمنزار میبرد کندی حتما به دردسر میافتاد بنابراین با خودش گفت نه بهتره آره به فکر کیندی باشم توی فرصت مناسب گاو رو به چمنزار میبرم بعد تصمیم گرفت به سراغ گرفتن کره از شیر بره برد، حالا وقت گرفتن کره از شیر بود فرید ظرف مخصوصی رو که زیر سایه درخت بود برداشت و با تمام قدرتش شروع کرد به کره گرفتن از شیر کیندی کچلو هم اونجا زیر سایه درخت بازی کرد کار گرفتن کره از شیر که تموم شد فرید با خودش گفت بهتره کمی استراحت کنم آره بعد میرم سراخه درست کردن نهار فرید این رو گفت و دراز کشید تا کمی خستگی در کنه اما اما اما دراز کشیدن همانو به خواب رفتن همان فرید سراسیمه از خواب پرید آوای آه، آه، وای آه، آه، آه، آه. دید که کیندی با ظرف کره داره بازی میکنه تا اومد بپره و ظرف کره رو از دست کیندی بگیره یهو ظرف کره افتاد روی زمین درش باز شد و شیر و کره ریخت روی لباس کیندی و حسابی کثیفش کرد فرید با ناراحتی گفت آه دیگه از کره خبری نیست ولی خوب اتفاقی که افتاد دیگه افتاده کاریش نمیشه کرد فرید با عجله لباسهای کیندی رو جلوی تابش آفتاب گذاشت تا خوش بشه بعد نگاهی به کیندی که در گوشه آروم و بی صدا نشسته بود انداخت و گفت میبینی منو به چه درد سر انداختی کندی الان ظهر و من هنوز نهار رو آماده نکردم اگه الان مامانت از راه برسه و بخواد نهار بخوره چی کندی سکوت کرده بود و انگار صدای فرید رو نمیشنوه فرید با اجله رفت توی باخچه کمی سیبزمنی و پیاز و هویج و کاهو و لوبیا و کرفس چید اون فکر کرد از هر کدوم از این سبزی ها میشه یک غذای خوشمزه درست کرد فرید وقتی برگشت خونه بغلش پر بود از این سبزی ها به طوری که نتونست در رو ببند فرید روی صندلی آشپزخونه نشست و شروع کرد به تمیز کردن و پوسکندن کندن ها و میوهها. با سرعت کار میکرد و نگران سر رسیدن زنش لیسی بود اون تمام آشخالهای سبزیها و میبه ها رو میلیت روی زمین. فرید همینطوری که مشغول کار کردن بود سر و صدایی به گوشش رسید زود از جاش بلند شد و دید بله گاو رفته لبه پشت بوم و هر لحظه ممکن از اون بالا بیفته و گردنش بشکنه فرید تناب بلند و محکمی رو برداشت و به پشت بوم رفت یه سر تناب رو به گردن گاو بست و سر دیگش رو از دودکش پایین انداخت و بعد رفت توی آشپزخونه و سر تناب رو که آویزون بود گرفت و کشید و اونو محکم به دور کمرش بست و با خودش گفت اینجوری آه نمیذارم گاو از لبه پشت بوم آخ بیفته. فرید بعد کمی چوب توی اجاق ریخت و یه دیگه بزرگ پر از آب روی اون گذاشت و با خوشحالی گفت ها بالاخره همه چیز درست شد الان یه آش خوشمزه درست میکنم بعد سبزیا رو ریخت توی دیگه آب و یه کمی گوشت به اون اضافه کرد ولی فرصت نکرد آتیش اجاق رو روشن کنه چون بالاخره گاو بیچاره از لب پشت و بوم افتاد پایین و فرید بیچاره رو هم کشید توی دودکش حالا دیگه فرید نمیتونست پایین بیاد و نمیتونست بالا بره اون درست وسط دودکش گیر کرده بود و کمک میخواست بعد از چند ساعتی لیسی خسته از مزرعه به خونه اومد وقتی به خونه رسید و اون صحنه رو دید فریاد کشید و گفت وای وای خدای من این دیگه چیه که از پشت بوم آویزونه؟ گاوه؟ بله گاوه بیچاره بود که اون بالا داشت تاب میخورد لیسی فورا داس رو برداشت و تناب دور گردن گاوه برید گاو با چهار دست و پا اومد روی زمین و صاف ایستاد. سالم و سرحال. بعد لیسی نگاهی به باغچه انداخت دید که خبری از سبزی که توی باغچه کاشته بود نیست و مرغ و خروسا سرگردون به این طرف و اون طرف میچرخیدن. بعد فورا به سراغ کیندی رفت دید که کیندی با لباس های کسیف و چرب زیر نور خورشید نشسته و داره گریه میکنه با ناراحتی و عصبانیت کیندی رو برداشت و به آشپزخونه رفت. اونجا دید که کف آشپزخونه پر از آشخال سبزی ها و میوه ها و بوی نیم روی سوخته شده هنوز به مشام میرسید. لیسی به اجاق نگاه کرد و با تعجب گفت وای وای این دیگه چیه که توی دیگ افتاده وای؟ دو تا دست و دوتا پای سیاه از دیگ بیرون اومده بود و داشت تکون میخورد و از توی آب هم حباب‌های هوا بیرون میامد لیسی نمیدونست که وقتی داشت گاف رو نجات میداد توی خونه برای شوهرش فرید چه اتفاقی افتاده؟ بله وقتی لیسی تناب رو بریده بود فرید بیچاره از توی لوله دودکش افتاده بود توی دیگی که پر از آب و سبزیجات و گوشت بود حالا جای شکرش باقی بود که فرید فرصت نکرده بود زیر دیگ رو روشن کنه اگر لیسی بدون فوت وقت دیدو و پای فرید رو که از توی دیگ بیرون اومده بود گرفت و اونو بیرون کشید. فرید از توی دیگ بیرون اومد در حالی که از لباسش آب می چکید. یه تکه درشت کاهو روی سرش چسبیده بود. یه مقداری کرفسم توی جیب لباسش و یه هویج بزرگم توی یقه لباسش گیر کرده بود. پلیسی با عصبانیت گفت اینجوری کار خونه رو انجام می‌دی؟ فرید با صدای ضعیفی گفت لیسی لیسی تو راست میگفتی که کار کردن توی خونه اصلا ساده و راحت نیست لیسی لبخندی زد و گفت ها روز اول خیلی سخته ولی فردا شاید اوضا بهتر بشه و تو بتونی کارا رو بهتر انجام بدی فرید فریاد زد نه لیسی نه نه اجازه بده من فردا برگردم مزره من من دیگه نمیگم کار من از کار تو سخت‌تره. قول میگم. لیسی خنده‌ای کرد و گفت: حالا که حرف منو قبول کردی باشه. از فردا هر کدوم از ما به کاری که بر عهدمونه مشغول میشیم و دیگه هیچ ادعایی نداریم. بعد هر دو با کمک هم مشغول تمیز کردن خونه و آشپزخونه شدند. کیندی هم گوشه‌ای ایستاده بود و با صدای بلند میخندی. افثانه خانداری مرد رو از مردمان سرزمین ترکمن براتون نقل کردم امیدوارم این افثانه ترکمنی مثل همه افثانه های شیرین و پندامیز جهان مورد توجه و پسند شما ادب دوستان قرار گرفته باشه هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح ویراستار الهام اشکان اجرا مهران دوستی صداوردار زهره خانیپور تیگه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانی دیگر بدرود